عزیزان من بعضی از بچه ها یه لحظه گوش بده گوش بده عزیزان من ما گوش بده یه مطلب خیلی مهمی که متاسفانه بچه ها زیاد باشتر کار دارن مبتلابه نه نه دروغ نه نه نه چی گفتی؟ چی گفت؟ حسادت حسادت بچه ها. یه چیز خوبی نیست مثلا میدونی چیه؟ Mesela bir efenin yoldaşı var. Müellim Me yoldaşına mesela gelip ist verir. Bu der var. Beta, beta ben beğen tamam بشe. Baca, Mesela dostu biz çalır Mesela eee bir kuş خیلی چیز بدیه یه چیز رو بهتون بگم البته بچه ها اینجور ها بزرگ که میشین یادتون میره ولی سعی کنید از الان رو خودتون کار بکنید که دیگه این حس بد و نداشته باشید خوش بده خوش بده, بده؟, بده؟ اولین گناه دنیا چی بود نه چی؟ نه به نه کی؟ نه قضیه حضرت آدم و ابلیس رو بل بل یادتون بیارید حسادت و خودخواهی خودخواهی و حسادت ابلیس گفت من برترم من بهترم خدا گفت که به, به انسان سزده کنید حسادت نذاش گفت که نه چرا چرا به اون من که بهترم حسادت و خودخواهی باعث شد که ابلیسی که چهار هزار سال الله عبادت لمشتی نماز گلمشتا الله الله تزده چه ذهنم اول سا می‌می‌سوذم، باخ ما دون نمی‌ن باست دالد، هسادت او خود خاهی، ازن استد، حسود دالد، همیشه سعی کنین مسالمه، دوست دوها بدن ک خیریت شیر بدن ک شت فات شیر، کشت دین که موارشون به اخت ورچونه کشت ازدال دن، به ندا سورا یتر در، یه ولداشون ماشین دالد، پاستاما شونم آشناله پنچر اولسون اون تهره جسم تصادفل هستین این بچه حسادت چیزی که خدا خوشش نمیاد خدا خوشش نمیاد پس ساکت ساکت حواظتون ببنم باشه حسادت رو روش کار کنید مثلا بچه ما ایسا رو بهتون یاد دادیم طرف چیدیر نوبته ده ایلیه برر şey بیری شهید شه دیریم من یک سنجا جد کباق خب پس حسادت معنیسی یک تو چسی ایسار ایلید سنجده طرف زانون بررده زانون الین قطع بجدن جدیرده خب خب اینا ایسارگر بودن حسادت معنی نداره بر کسی که ایثار میکنه ایساره. پس سعی کنید تمرین بدید خودتونو اگه به دوستتون همسایتون فامیلتون یه چیز خوبی رسید خوشحال باشید نه که رنارهت بیشین آدم واد مالاتورابی دیده دیده چی بین افراد توخ پاکلی دیده توخ هستیده دیر دیر چه زاهرن دیر حضرت بوسدیه چی کلاگس حضرت بوسدیه چی تند توخ پاکسان الله من دیپسنه دیم چی هر نمی نستن ویرسهم گنشو و دوبرابرم ورزیم این دالله تن نه سن است مثلا Bir dənə at istəsən qonşuya 2 dənə at verəciksən. bir dənə öv istəsən, sənə bir dənə öv verəcək, ona 2 dənə öv رو خودتون کار بکنین که وقتی دوستتون رفیقتون اگه یه موفقیتیه امیم مثلا بیرید دوستش حاجد اول olur. چهر دن اله اتانو ره وای اون یه حاجد اول نیا جدت زایزالده نو اولده نیا گشت قرآن و خیرمن و این خیلی کار بدیه خدا هم دوست نداره خودتون کار کنین که انشاللت هسود نباشی میدونی چیه؟ هر سود نیاز است یعنی می یعنی چی؟ یعنی وقتی آقا نوری هر سود نیاز است هر جد نیاز است مثلا اینه. کنشون مثلا جدی بودن موافق چهسپیلی چهفیلی؟ سنه بودا اتیوییسند. آنیا جدی ماشین آورد. آنیا باقالت من آلمام شم. آنیا ضایض آورد من آلمام شم. سنه سرده ازدواجیتیلیسند. در هر حال چطور خبری نیستند؟ آدم دوستن. کافیه بچه یه مطلب دیگه در مورد افلام. احکام بگم احکام احکام احکام چی گفتیم احکام نجاستات ها رو گفتیم نزرست ها رو بشمارید دست دست. نیمان ما... بش بش بش بش. اگه اگه یه نزرست بگو یه نزرست مثلا سلام حیزم یه الله بشی بشی خب یکی مانیم خون عباس بگو فقط، بس فقط دست بلم. شراب افرید. آقا, آقا, آقا. آقا مرده نش. سگ و خوچ. سگ. ادرار و مدفو افرید. خون گفتن. آ من گفتم. گفتن. نه، قرهای حرامو نمیگیم، چیزایی که نجستر رو میگیم. خوشو گفتن. خب، اینا چیزای نجس هستن، خب؟ اگه به بدن ما انتقال پیدا کنه با اون ها نمیتونیم نماز بخونیم. خب، دقتلا؟ کافر کافر اگه به علی عاشولا هل ورک اونن، اون الیمیزنن دا ایلامل نماز چرا؟ جلای که تا الیمیز یواغ خب، متحراتی بودن، چیزایی که میشه با اون پاک کرد. مهمترینش. مهمترینش مهمترینش مهمترینش آب بود دوامیش خاچ خاچ یعنی چی؟ یعنی ترپاقه ترچستان مثلا گانونستو نه؟ آفرین سن... آفرین راه بری پات نجس شده؟ راه میری دفعونزه قدم تو رو خاک راه میری پات تمیز نمیشه ولی دیگه نجس نیست میتونی باش دمازو خونی خب دیگه؟ از بین بردن نجاست آفتاب دوار نزه سلوب این در دوارا آه آه آه آه نه، آره اسلام یکی کافره مسلمانش آفره حالا انواع اقسام آب دو قسم داریم آب چی بود نه نه نه مقدار نه خود زنس آب آه آه. نه نه هرکس بگه مثبت داره دو نه آب داری، بخ منه مقدارم بهبود نل مدم. دینسه آب. نه. او الان شور. اولام بیدبانه دیدم شور شیرین. چی؟ نه. چی؟ نه شور شیرین نه. دینسه آب. یعنی مقدار آب زیاده کمیش میکارن اد. آب. مثال بزنم. آب هندوانی سیه آب شربت آب لیموتیه نه شیر نشکروش رو نمیگم کن دستم الان دید اخوا مثبت داره ها چیزی که بهش میگن آب یعنی بخصان سودو مثلا رنجه تن آب مضاف و مسلق آب مترک همون آبیه که ما میخوریم، همون آبیه که تو رودخونه هست، آب مضاف آبیه که کارش دوباره، مسالم نمی نه، مثلا گلاب کلاب دیگه آب نیست، آب مضاف، آب هندوانه، این دیگه آب نیست، آب رودخونه که خیلی گل باشه، اول اصلا با خزانه اصلا نیستن سوختشمون من دیگه نه لیلی سو ولسو جورسان لیه لد، آلودسان لیه و جورسان سوچمینده، او آب مطلق ده پس از متهرات چی ما گفتیم آب آب مطلق رو میگیم. یعنی سه بیل بوشگدا، جلابونلا، آلوند سولستیاسانه یواسان، او یوماز. خب از دهاد مقدار آب غلیر، کور، کور، غلیر، مقدار. کسی نه جاری، جاری. مثال بزن برای آه... قلی. برا <geç arbit restaurant> آب قلیل قلیل قلیل از اقل میاد چمه آب لیوان آب پارت آب آچواریوم کوچیک ساکت آب آبها گفتیم آب قلیل آب غلیل آبیه که از سو جبانیم کمتر باشه آب کر مثال بزن آب سخت آب حول آب وسط به شیلنگ گوشگه بزرگ آب کرنان آب غلیلین یوماختان فرگ باشه سخلا هرچی از پیلیر دیست هرچی از پیلیر علم بزرگ بقید علم بزرگ فقط علم گوضاست امرا بس بولن شمیم بگو فرق آب قلیل با آب کر بولن بگو آب قلیل در پاک کردن نجاسات فرق نمیشه چرا نمیشه با آفتابه نمیشه پاک کرد. بایست بایست شما بگو خلاص نه خوش زبانم شما بگو گلم بگو بشین تو بشین بشین فرق آب فرق آب قلیل با آب کرد در پارک کردن جنجز خاصیه آقا خوب آفرین با یه بار باخت کوینده زنده خود خودم بذار توضیح بدم بعد از اینکه گوش بده امام. گوش بده گوش بده باشه. گوش بده گوش بده, گوش بده. گوش بده. خودم میگم. فرق آب کور با آب غلیل در پاک کنندگی نجاسات اینه که وقتی عین نجاساتو رو برطرف کردی. قانده گان سریپسا جب م تو بین نجست پاچولو بگیدیف ولی هنوز نجسته به آب قلیل اینم بی سری توسون پاچولو مر ولی آب قرنم بی سری توسون گتی بوتول دیتی آب قلیل چند بار؟ سه بار حکم آب جاری و آب کورم آب جاری آب مثلا آب جاری حکمش به نظرتون با قلیل یکی یا یک کور اف برین آب کارو آب جاری حکمش یکی یعنی آب رطخنده یه باد سطوح اینجوری بکن دربیاری دست پاک میشه استخر بزرگ دستو اینجوری بکن دربیاری پاک میشه ولی پارسنت اهلوساسوند خسته میشن پارسنتین نمونداری لرستان اهلون دار پاچول ولی پارسنت سوینا نلیاب لرستان پاچلی استنالو ندیر اشتر اف برین سوت هستن کتیلی شن آخزن گانیه آب قلیلی نسواشه چه سنت اینجوری آب میزنیم تو دهنهمون اینجوری بیرون میزنیم اینکه میمیزنیم بیرون ندسته ها دوباره سهبارد پخشه ولی آب شیلنگ اگه توش هوا نباشه بیستی لحظه هدر یادداشتان دوست داری؟ اول پیکر لیر از کلاس و سراغ داره گر اول سودا آب کرده ار آب سلامیت خودتون سلامت و فرستی.